گمر کردنی دلیر سلین عزیز و خوشویست سلاوتن لیبه خوشحالین لبشی هشتویکی خوند نوی کتبی چشتی مجوری هجاری مکریانی حتی نوی خزمتی ایوی برازو خوشویست فرمون لگل من سوره بان زور خزور خلیداغه حسامیش من د گلبو جریک مام علي پلاوی لنه بو کاکلا ګویز تکرده بو خلیداغه پرسي اول لکوی ګویز د پلاو دکن من لجاتی امام علي وتم له ايران مام علي سور حلګراو بسریده نرن اخر ترم شیخ علي دو بس ارزاو بیست اغه هيا ټوکې دنیا دیوه. دی ولهمو ايران یک کاکلا ګویز به پلاو نخون خلک دی زوریان من خوش دويست دا دات نه لمو خوشم د دکردن جاریک چوبو ماو بغداو خالید آغا من بو چوبو سربانی پیره جنیک وطبوی او بو چی کرو مازد بو ممهجر دهینا و بو من نهی نی ایوش وطبوی خالید آغا ممهجر قصه خوشن لودکا اتو بک براز غزریو لین چوی یک کنیوا خلکی گند هاورین بو هینام که خلکی والد هاتون دار پاوانکانیان دبرن ملالسید رحمان منرد ها تووتی دلند برینو جوابی کس نشدینه و تمرن رګان دی بگرین هر چی هات بار درو برابر من لسندن رتمن کردن پیو یک بس به بار و در چوبو دور بیانن سعید رای کردو بده منچل کابر را سا پیبو شرینه کردو تسلیم بو مام علي که همو دنیای بشروکه خویش کوشتبو زور بشلی درویشت تا سعید کبرهنه ام جرم مام علي جوی پیدا و هر شیله دکرد وتم مام علي مرگی او سروس بی. خونت ویرا بچی پیش وتی نا وتم دیگانه فکیره بوسیبی کوجم دگل مجید و ملا سید رحمان سفرک من برو زینوی کرد شو لناو برگه میوانی ملا محمد ناویگ بوین بیانی هر لمالان آوا دو تیاره هکر هن ترمن هت نسر و تم خوب شار نوا جگا کم روتن و خیزشی نبو لراست خوم دانشتم قطوی سیغاره کم درینه سیغاره کم پیچه او دام گیرسن و تم با آخر سیغار لجیانم داب کشم تیاره لیان قرماندم چن مره کن لکر کمره که دوری من کشت من وبر نهتم بروین چونو بانگ ملان رحمان ابو هرامن کرد نالی شهادت لم سره چوب و نو درواشیلانیکو لو سر در نهاته و بلاخ کیشان در منکیشا همو دست و سر و چاوی به درواشیلان ده د خوناته بو قدر یک انور داسوزم ل جګی خوندنه طالب بغداد دی پی باسم کرد ک چون کومونیست یک بو استاج لیمنی جنوبی همکاری ناوی ملا برایم بو د یک بو کلا سورابن بوین هر دبو لدې دور کویناو ل برین ویستم او دست تک دروس کم، من داودی میر دی میری او هین منم بان کرد. وتم او دست تک بکاله پولد دادمه، تو رابو، وطی، وتي... ای، ایب من او دست بکالم، هر ناش کوی دکالن؟ پیمود، من داود ببخشا، منظورم او بو اگر انور ملا برایم بمر دایا، تو چون قبر یکت بود دکالی، وطی، وتي... های، کوا خوا او دکا، اگر او بابا بمره، خبر کې لو ده کم قاتیل در نشته و من شوتم د باشه بروبیک ولا بزنم چون د کولی کول کې زور درودریژو کولی کولی ک انوري زغزلي به اسانی کېده بنې جری وتم دار رایکو کنه کې تیدا بلو او ب او دست پښمرګیک من بنوی علی ک خلک ایران بو بغالت پیان وت بو سید رسولی با بی ګوره کوجراوه او 24 دیناري لکن سید رسول داناو لا تاوان شید بو د یکیو دوای سرورش پیدا مانکردوه نمانوا. وقت من دنیلینه برد. خزمیکی لذی و واحد. گویی دیبم معلا شخی قرنقابه. علیاً کبر دوای شخاتو و تویا عادی. نوی جندوک کانت حال دا تابیان خوچم. امنم شو شیر پینسد جندوکی کافرم کشتو. بریبان لو خزا ده هتومو. علیش دلی عیب قرده دب عمل استوری اگر توی این دم ردی دبشو انگلیس و نوت کور د سمن بوستینا شیخ دله اه ام هچ وکافر د رشه بمن چار نه کړ ل درفت کی تردا کلب خولان بوین برد ما قرار وا بو 12 جره ل برخيبدن 56 جره حالات بوکات موا جنم پیدا اری کاکا بونت یشت باج علاج وکم گوتی بخود ترسام هند عقل بن بکاری او ولاته نیم جیشن رمزان بو خبرم نرد بو ملا قادری قاضی گلاله که به های جیشن و سب و رادیو نامی که درودریج نوسی بو که قلمی کوپیه بزمان تر کرده بو لامدینه و ثعلوبه دوازدار رو جره چوب و مکه با پیغمبری گود منگم دی و فرموی ویلون لثعلوبه یعنی ویل لبو ثعلوبه که کاغز هموی بو تو رهاته پرکره بو ناچار جردامو خون بی فتوه قاضی وتم جیشن پیروز لا خوش او بو امزاکه قاضی گلاله بو کم روی تاویش نبو لسوربان و لسر داوی کک عبدالخالق چون بو ما کریر رادیو شورج رادوی کردستانی عراق لشینوی لخوار قصرو کیوا جگه تیده جیان من نبو فعلا من گرتو چند جور یک من درست کرد جور یک مبخوم کرد زورتنگ بر حال جگه دو تختی تیده دو لبردو قربو جور دری سواغ ندره بو همو برد بون موشمه یکی نیلونم با بر میچکه یوه دابو که خول نواره، برو دوی یک حوالانی سر رادیو زور بون، کدو لوانش شیخ عزیزی شیخ رزای باسره مهندسی رادیو برق لاچیکوزلوه کیاوه هات بو، اویتر رفیق چالاکی و گویندو نمیش نام نوز بو، کودمسر او فکره که شرفنامه با کردی ترجمه بکم، بلاهم کتاب لخیه بینم. فارسی چاپی مصر و شرفنامی عربی ترجمه علی عونی و شرفنامی عربی ترجمه ملاد جمیل روش بعنی بههنامو ملم لینا. لباس کاری نوسینی کلاسی رادیو ببن کارگیش نو نوسینی نو مقالات بر رج ناموشتیتر یکم کم داد یا لبنداریک یا شول سر جگه خون ترجمه و خرید دکل <سؤال> بهاری سال 1969 هزار مصطفی سوشستونو ملان مصطفى چوب و گران للای دشتیش لیرو سلیمانو لماوت ماوی یک دم و ویستم سفریکی بغداب کم دبوای در باری کاری چپخانشو برزانی ببینم بر راگی هولیرده حتما کرکو کچو ما کاراجی گوتم ترامبیل بوشد کابرای در تماشای که دورو بری خوی کردو تی دانی شا دانی شا دنگ مکا که خلکی لدورن ماوتی کاکا توق سیر دکی باس از این مصطفی هستند، هرکس به اوی بروا دولت بحانی که پید گره دقري و دیگری تو بوده چی؟ وتم این راستی که دچم چاوم با برزانی بکوید. نردی کبابیان بوهینام، راننده کی بان کرد و سرته که دگل کرد و تی دگل ام راننده برو، هاتی نکن چمچمال، لیوه و گینه سر چوار تینال، رمزانیش بو، با کابر تینالی سپرده مرویشت، چایچی نانو چای دامی، زیلی کی پرلا سرباز ها دستی لیهالی نانو ام خزمی من تا برانبری سرداش برن، لرگا تیر قصه خوش کرد، لبرانبر سرداش دا بزیمو بپی ملیار ریم گرد، دو کسی بتفنگوش گیشن من، و تین پیشمرگین، دو ای توزی گوتم برامن شهرستانی و تنبالم، ایو برون، من ورده ورده دیم، و تین نانا خیر، بپی تو در روین و بجت نا حیالین. وانیت بارک بریده هات پر لجنوم من دالو میریش ورن سوار لپشت وانیت سوار بن. نوجشیوان گینا گوندی قوم. ساپ کامیون و تی معلملی ری و بربانگ میوانم بن. و تم پولاکت سندا و تی با خواهیم لیت نابه با خورای سوارم کردون. و تم دقیقه من گینا شدالا نیو دینار ورگر. بردنیا برخوا خانه. لباتی نیو دینار سیارو بعدی نرم دایا. چوین قوه خانه سوفیا خطوتی فرمون بوته کی شیخ عبدالرحمن بخیری هنین پیوی کی زور عقل زور روح خوش زور کوردپریست لو وتاغی یم لیبون بسطان کتیبی تفسیر و حدیث لسرتاقبو کلبر دو کل زرد و رش حل قرابونی دیار بوزور لمیاجه نخوین راونه تو لیمرونه دربار شیخ و درویش شدلوا شتایکت 22 منیش وقتو الزماني مولانا خالد شیخ احمد سردار یک یک لخلیفه خوشویس تکانی بو سیدی برزنجی نا زنم کی طریقته کل رگ نخشبندی لیداوه بلان بر لو بسم عراق حمسور ناوک لو تایفه داوای جورک سوسیالیستی دکرد کلا بیرو بر وای مزدکین نزدیک بو ما مرزانه لو شیخانه بو بو قطبی دایره حمسورو مریدانی ملانی کردواری لیکوت نشکایات او شکایتکاری که حمسور دوی پیغمبریاتي اکو جنو ميردي مرید او ټيک لاونو همو جن بو همو پیوان حلال کس ګويه به شرع نه داو لا ګناح نه دولت حمسوري ګرتو بردي حبسي کرکوک باستان له مریدان ک نشانو دروشمیان قولاداری کی دست بو چون لا دوري کرکوک جنو پیاو مندال مان نګرت تا حمسور بردرا زور لملایانیش چوبونه نو او طریقته د انوت هر کس چان ورجک لو شد لبه اقلی دا گوره. من خوام ملاتهانا وکم لبنان دا گل بو، لنا خوشخانه مورید بو دای گود، هاو کی زور عادلانه بو، کس لکس تیرتر و برسیتر نبو، او دا مکمن چومشداله حمسور ما بو، بلامدامو دزگاکن نما بو، حمسور لو بریده که شیواله اکی نیوان بو دا جیا، چند کسی که تری شیانم دناسی که آغایانه دا جیانو دا گل پیشمرگ دا بون، بقسه که تاریخ یکی زیندوی کردستانی عراق بو وقتی بها اولا لسر گلو کاری کردو تسر بروی او شیخانو لرگی پیشوی لاداون صوفی اک خزمتی دکردین کلسر یک قرپی دهاته. دیار بو لکون موریدکانی زمانی جزم بون بو. شیخ عبد الرحمن درویشت وتم خواحافی زدلیدکی نوک ندبینی نوا گوتي دبیس بی بي نانو خون وتم یا شیخ ایم بر روشو نبین تو پرشو من بو و برا بیان دروین. دوی پرشو خواردن بارگین اکی جلکرو حاضر بو. وتی سوار با تا حال دن. ویتیم لازم امنیه. گویتی توش لیم مبا بمام حسانی فیلی کدیو نسر ما بردی. کابرای خوان بارگین لرگه گیر آیا برام او مام حسانی که شیخ عبد الرحمن بوی باز کردی. ای پی او اکی فقیر بو. مام حسن كان هناك فيلي بغدائي بو حاتو بو سري عبد الحسيني كوري بدا كالا هلادن ببنكي يبيش مرغر رادا شيخ عبد الرحمن لشد الله ومن يرغل خيست كالا كوستاني بطني نبي كا تيسر كوتين مليج شعي پيرا مام حسن ذاني كمن خلقي سر قلوم هلادني شلية دياربو قرنه يجيرد كتوه بشوارهو مالا خود هرچن وطم پولي تا هلادنم ساندو كوستان بونا بلد خطره بهرین داو بزنی و لیم جابو و کمن خون بپیاو زنم و بتنیاد روم. های لدا می نشی علیهالکرده کریو سر ما بردی. کجایش دینشون که جابو جاکلاکی محسن لبفردام مابو. دیار بزری لکریو سر لشی زور لنزیک مالان سر ما برد بی. با سر سرخوشی محسن دهاتم میوانی عبدالرحمن قازی بوم. ما مستهردی شاعر لوابو. بداخوا لبرنا همیدی با قول خوی میش کی داخل هموشتی لبیر چوب بواوا دلخوشی دانوی من بحری ندا بزور وام کرد سروریشی بتاشن پاشنیو رو چو من معلومه کابره کی بکری گرد بسواری بمبا بماود شونویجی شوانی کی اینه ناودی و لاخ بفربو سرماش سخت کابره اوتی توب مالی ملا منیش خزمیکم هیا اوتم رمضانان میوان خونتالا دا نابزم تو بچو به ملابله کت هی اگر روی ناخوش بو زو ور و د شینه مالی خدمت هرچون بیش شوی که رای د بیرین ملها در وتی فرمو جوړی کی زوړ گرمی پاکو خاوینی هبو هر تماشام د کودل دلیه... آی به خو پیر بوئ بد اخوا زوړ ګور راوی وتم ما مستمن تونا ناناسم تو شقت من نه دیت دت ګور وتی کاکاجار تو شته د لبیر چوته و من ناو مل عبد چن لساب لاغ پیکه و اشنا بوین و لکومالا دا حوال بوین که وی جیانی کومالا من کرده شوچرو زور خوش رابورا پرشو کوتینا ری چشتنگاو گیم ماوت دو شو لای برزانیو شیخ محمدی هرسین که برپرسی اویبو ماموا پرش دو شو دگل کامیون یک برو سلمانی ری زورجر لا قرد جریخورد به حال حال گابسواری سواری کامیون گلک گل بپیو با قرشلن شو گشتینه قوه خانی قدی چای ازمر لبر سرماو بپی خفینه مانو یرا بنوین شوی ما بو کوتینری ملا بنگدان گین نشر خوم کوتای پچخانهک نانو چم خورد نم در شاگرد یکم نرد جگم لا ترومبل بو پیداکا تا کرکوب بو چی نم دی در کوم. البته لبر جاش. لجاشانده ترسام بانگیان کرد مسافری کرکوک سوار بند جگم لپیش و بودن رابو اینکی راشم کرده چاو گوتم برا من لپیش و گیش دبم گر جیه که لدوا و دابزی جگه بگواری نوا خوم لناورستی پیشتو خزان لارگه لدلاو پیکنینم بخوم دهد دم گود آی زمانه سیو اونده سال بو کردو کردستان من دومو دردم دیوو اوارای ولاتان بو مو حبس شووبیدارین چیشتو و یستا وره لعرب عرب نترسی ل کوردی خندواری هاو مسلکت بترسی که بینه بتکوجی دیسان بترسو آیات القرسی ل چمچمال درچوین جا که هات ل ماشینکه رواني خو بختم نایاسم ل کرکوک وهات مو حوالیر سری کاک محمد ممو تایر توفیقم دا اوسا چوما و بغدا وگد زانین ل مانگی جونی سال 1964 دا شرق اسرائيل عرب قومه همکله شردا زوربا منخوش بو پیوی دولت حاتم که کی عرب فرمانده دو سپه عراق الهولیر و کرکوک وهاتنو دا وین لملا مصطفی کرد کلو شردا یریدی دولت مسلمانی عراق ده بعد ججولکه من لو مجلسه ده حاضر بو ملا شیخ عاصی دلی به شیر حلقیشن جهاد زمان شیر حلقشان بسر چوا برواش موایا عرب درقتی جولکنان ک اسرائيل دولته کې اسریو صنعتکارو دنیا شي لاګره بلم چون کې شر مسلمانو جولکیا من شر واستین مو مسلمانتی وام امریکه د ک کل روج واتنګنده نب مخنجر لپشتو له مسلمان دمو جولک شر بیان کوجن فرمانده هې هولیر له نوڅاند نه زانم کې فرمانده سپای اسرائيل بل هجه پر لګالتو موشه موشه د مشهور ک دنیا د ناسیا چبالایکا سبای او روشه که او روی بون من دستی مصطفا و زگروسی کورم بو لپشت گوندی غیزان دمجران. ملا مصطفا را بانگی کردم خبر چیه گوتم خواه شکر عربو اسلامیتی که انزور کزا چوارسد تیاری مصری لسر فرگستو تاو جولکه گاله ان پیدکا جوهر هیرانی لقاوخانه او تبوی ایشالله جولکه همو عربان قرددکن گرت گرتیانو دو منگین حکم ده زورم حس کرد که جو بسر عرب دا زال بون اکسی که لجورکم بران بر بخوم حل چند روش اک اشپز من نبو حال من شر عربی پیش مرگاهد من اشپزی چاکم اشپزی بو کردین چند روش وطی نمکنه گوینده رادیو اشپزی نکم تاقی من کرده و دنگی بکر نه هد اویش پی چاکنده بو هر دبی گوینده بی وتم ابو طالب لو ته ته توجنیو کومونیست نادم لبر خاطری تو عکس موشی دیانم لا بر دوا برو وازمان لیبینو هر نانی وشک دخو بگرانی خوشویست لیرد آبام شیویا حتی نکوتای بشی هشتاوی که خوند نوی کتب چشتی مکریانی تا بشی کترو لشوی کتر در دین و خدمتان شادو منو بخت وربن.